هن نامید نباشی که تو را یار براند وگر امروز براند نه که فرداد بخاند در اگر بر تو ببندد مرا و صبر کن اونجا که پس صبر تو را او به سر صدر نشاند و اگر بر تو ببندد همه راهها و گذرها در پنهان به نماید که آن را نداند دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش به که ماند به که ماند هر خاموش کذیمهی همگان را به چشاند به خیلی من خیلی من معتقدم برای خودم عملا دیدم این دو نفرم که دوستای منن میدونم من چه تیپ بودم شاهدام شدهام هستم من نه به خدا باور داشتم نه ایمانی داشتم نه اعتقادی داشتم خیلی راحت بگم الان که دارم نمیترسم قبلا میترسیدم بگم باله. ولی الان دیگه نمیترسم به هر حال این در مورد خودم پیش اومده که واقعا متحول شدم به صورت خیلی خیلی روحانی اینو دارم میبینم و همه دور برم میبینم در زمینه ارتوپدی واقعاً گزارش داشتم هفته ی درست روز جمعه بود بیمارستان ملاقات دایم بودم تصادف کرده بود عمل پا داشت و نگارش داشته بودم برای اینکه زانوشم عمل کنم من رفتم گفت گفتن تا دو هفته دیگه هنوز طول میکشید تا بگیم راجع به زانو چه تصمیم میگیریم گفتم بیا یه ارتباط بکن میدونم شماها منو باور نداری به خاطر اعتقادات قبلیم ولی بیا یه ارتباط بکن هم گذاشتم روز زانوش رو گفتم فقط چشماتو تو ببند و سعی کن که داخل بدن خودتون نگاه کنی. من چیز دیگه ای نمیتونم بهت بگم. گذشت فرداش که شنبه بود ساعت دو به من گفتن که مرخص شد از بیمارستان. امروز تو دکتر دیگه ای اومده دیده و گفته که زانوت هیچ مشکلی نداره و تو مرخصی از بیمارستان. مورد دیگه بچه برادرم بود یک سالشه اومدن گفتن که رفتیم دکتر ارتوپد گفته که در رففتگی لگند داره مادر زادی. من همطور گفتم هیچی نیست. اصلا نگران نباشین. رو گرفتم و قلم دستمون رو گذاشتم روی قسمت کاله ای را نشین اینا. اینا جلسه ای بعدش که چهارشنبه رفته بودن دکتر دکتر گفت بود اصلا این مسئله‌ای نداره. یه دکتر دیگه ای. اصلا این مسئله ای نداره و من نمی‌دونم چرا شما این حرفا رو میزننی. در مورد اعتیاد داشتم در مورد ناراحتی روحی روانی در مورد احیاد که دوستان سوال میکنن. دوستان زیاد سوال میکنند در مورد احتياط ما همین امروز چند تا رو داشتیم توجه بکنید که دیگه میشه کار بکنیم بفرم از این موارد دور و برم این مدت زیاد بوده حالا اگر شما بخواید من موارد دیگه موارد اغلب اگر... مواردشون آره مواردشو میخوایم مثلا روحی روانی بوده کسایی که افسردگی های شدید داشتن و درست از اولین جلسه ای که من اومدم کلاس که جان دوم که شما اجازه دادین که میتونیم رو دیگران کار کنیم و لایه محافظ من یه سری تو لیستم آوردم اونایی که به نظرم در اولویت بودم دو روز بعدش که صحبت کردم دختر خاله‌م بود شدیداً هم افسرده بود و من نگرانش بودم گفت از سه‌شنبه نمیدونم حالم خیلی داره خوب میشه خیلی زیاد گفتم باید. یه همچین اتفاقی افتاده و من یه همچین کاری رو کردم و از راه دور دارم برات انرژی میفرستم پسر خودم که تو کانادا است، استخونه پاش بزرگ بود و من سه شنبه همون سه که لایه محافظ بود چهارشنبهش باهاش صحبت کردم گفت مامان صبح پام خیلی استخونش درد میکن ولی اصری دیگه خوب شده و من الان خوبم یعنی از راه دور و از راه نزدیک از تماس با دست و غیر دست به هر حال من خیلی نتیجه گرفتم موجزه بوده همش و گشایش حتی من گشایش داشتم باشه. بسیار عالی. دست رو فعلا علال‌زاده. خیلی عالی، خیلی عالی. فیدی عالی. نه، خاصاً نه، چه اینکه شما میتونستین این کار نکنید. دست ما بعد برای شما بزنیم که اما مثل بعضی روس‌ها کار نکنید. ولی اینکه اقدام کردید و این شجاعت رو داشتید، رفتی تو صحنه و برخورد کردید اونم علی الرغم شناختی که از شیوه تفکری شما داشتند و این حرفا رفتید جراعت کرده دفتتون وسط و هر حال خیلی عالیه، بسیار بسیار عالی، واقعا جای تبریک دار شما اجازه بله، اجازه دارین، منتقا بزاریم، اینشون گزارشو بدم، میکروفون بدم، خدمتون چرا اجازه نداری؟ بفرمایید. از روز اول که تجربیاتی داشتم ولی به صورت مشخص بگم که وقتی کلاسو نگیرم همراه دوستم که همین خانمی که قبلا صحبت کردم برای عمل جراحی بیمارستان بودم من بیشتر رفته بودم که با ایشون باشم و با همدیگه اتصال داشته باشیم بر اینکه توی عمل میخواستن انجام بدم ولی وقتی ایشونو بردن بالا، من دو ساعت اونجا بودم. اولین کار تجربی که اصلا بس من ناگهانی پیش اومد که یه خانوم با فریاد وحشتناک از اتاق عمل آوردن که این انقدر جیغ میزد من دویدم جلو از شوهرش اجازه گرفتم گفتم بذار پیش من باشه البته هیچ اون لحظه فکر فرادرمانی نبودم اشک مخصوصی نسبت به این زن حس میکردم تو بدن خودم اصلا بقلش کن دستم گذاشتم رو سرش من گفت تو فرشته ای تو از آسمون اومدی تو کی هستی هی شوشورس بهم گفید مجید بیا مجید این فرشته مامان مامان بیمارستان همه جمع شدن حالا اون آقا میگفتش که اومد به من گفت خانوم من پزشکم خودم و خانومم من پزشک الان عمل کرد و اینا هم بعدن در اواخر شاهد بودن که اومدن توی حالت این دست من اولیم که گفتم آقا والله به با خدا خودم دارم تجربه میکنم من اصلا نمیدونم چیکار دارم میکنم <تصفيق> گفت شما انرژی درمانی هستین شما <تصفيق> پولاریتی هستین اطلاعات داشت گفتم والله بذارید خانمی توانی کم بهتر بشه میشینیم با هم مواحظ شو صحبت میکنین این یه مورد بود دوباره یه مریض دیگه آوردن حالا از دیده دیده <تصفيق> نه گفتش که یه چیز خیلی جالب بود که یه خانم دی با مادرشون اومدن بیرون اینا دیدن که پرستارا من دارم میکارم میخوایم اون خانیمه اومد با مادرش به خانم تو رو خدا خواهیش من دختر من دار درد میکشه من هم همه هیرون که مباده اینا پیش خودشون فکر کنم مثلا من چی گفتم برفتم دستان رو پشت قفسه سینه شو روی سینه شو. اون که اصلا خوابیده اصلا اصلا رقم اصلا دیگه باور کنید من دوچاری حالت وحشدناکی از ترس استراب شده بودم که مواد اینا فکر کنم من اینجا نمایش دارم میدم بعد یه پرستارو من خانم شما چیکار کار دارید میکنید اینجا اتاق بقلی هم الان میگه که شما خودم خانم به خدا من نمیدونم من خودم با اشق و محبت اومدم دستم رو و آرزو کردم که اینا درد نکشن دیگه فقط برد. همین بوده حتی تا بودم روز به عمل داشتم رفتم تو اتاق عمل دیدم پرستاره به من گفتیش که دکتر این همونیه که میره بال سر مریضا ا... انرژی میده <تصفيق> بعد دکترم گفت خود نمیترسی گفتم از چی بترسم بلد. من همینطوری واقعا با عشق این کار کردم دلم میخواد همه بلد. اینجا دهن دیشم من جمله خودم بلد. و تجربیاتی از این دست استاد من همینطوری به صورت چیز خیلی زیاد داشتم بله خیلی یعنی با دخترم کمردرد شوهرم، روده درد من خیلی داشتم. حالا میام بله. خودم باستم تجربه. این کیسایری که پن نمونه ای نمونه فقط اسم نمونه رو ببرین که برای دوستان که نمونه‌ای که کار شده چه مشکلاتی داشتن. بله. یکی اون خانیمی بود که در ناحیه رحمش اینا عمل دوستان شده بود. دوستان توجه بکنم، این دقت بکنم ب... به دردشون میخوره یک خانیمی بود که جره پلاستیک سینه داشتن. یه خانم دیگه ای بودن که توی ناراحتی کمر ای داشتن که اونجا دردشون ساکت شد یه جوری که خیلی ناراحتی داشتن نشست رو صندلی و اصلا حالت آشفته داشت بعد دایی خودم که به شدت می خندید گفتش که تو فکر میکنی جادوگر شدی بعد خندید و یهوی برگشت به شوهرم گفتش راستوسی جادوگر شده Workers> تموم شد اسپاس هم تموم شد بله یا دخترم مثلا سردرد خیلی شدید داشته که خوابی بله ولی بیشتر استاد من از بیشتر غیر مستقیم کار میکنم یعنی مثلا روی مبل نشستم جلوی تلویزیون دست شوهرممون می گیرم اون تلویزیونش داره نگاه میکنه و بعدا اون احساس سرخوشی و زندگی رو درش مشاهده میکنم و رابطه حتی میتونم بگم روحی روانیه. بله یه مقدار همش هم جسمی نیست یعنی چجوری بگم یه احساس شعف رابطه خوب یه همچین حس. بله بله بسیار عالی بسیار عالی خیلی ممنون و خیلی مشکل گزارش دارین شما بفرمایین میکروفون دوممون کجاست خب باشه خدمتون و انسیس کنم بعدا بدیم اون جام پر. پیرو تایید صحبتهای این خانم میخواستم ارز کنم که تمامی اون تجربه که ما اینجا به دست میاریم تنها تأثیر رو مسائل جسمانی نیست بلکه من تجربه که خودم به دست آوردم مسائل روحی روانی و احساسی هم میشه من علم. پسری دارم که از سن هشت سالگی خارج از کشور زندگی میکنه و حدوداً شش ساله که من این بچه رو ندیدم میگم علم. بچه الان یه جوان بیست ساله هستش حدود یک سال بود اصلا من هیچ تماس تلفنی با این بچه نداشتم جمعه گذشته من استاد همینجوری که نشسته بودم و داشتم تلویزیون نگاه میکردم یک آن فقط به عکس این نگاه کردم و از اعماق وجودم براش آرزوی خوشبختی کردم ظرفی کمتر از سه دقیقه این بچه به من زنگ زد باله. و تمامی اون احساس سالهاشو و اون اندوهی که داشته توی زندگی و من ازش بیخبر بودم این بچه از طریق تلفن به من ابراز کرد. و از او دو هفته گذشته تا به امروز این بچه روزی سه بار به من زنگ میزنه بله. و یک ارتباط قشنگی ایجاد شده که تنها من میدونم نظر و عاییت الهی بوده. چیزی که شما اینجا بای استفاده استفادهشو به ما یاد دادید. بله. و من از این بابت از شما شاکر هستم. ممنونم و به افتخار شما دست. میکنم. خیلی ممنون. خیلی, خیلی میخوام، واقعا باشه. شما زیاد لازم خیلی اختیار بدید. خیلی ما. برحال ما که میدونیم باید برای شما دست بزنیم. والا شما بفرمایید، شما بفرمایید. سپاسگزارم. استاد در دو هفته گذشته من مواردی که روشون کار شده یکی آرتروز مال شونه بوده کتف داشتم بعد میگیرن بوده که هر همشون دو هر دو مزمن بوده بعد الان در محل بهبودی میگیرن ها خیلی خوب شده بعد دوتا هم مورد افسردگی فقالده شدید داشتم این هم خیلی خوب شدم بعد اصداد یکی از آشنا اسم 6 تا از گربه هاشون گفتم مثلا باید اونا هم امتحان کردم اصلا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> چهار تاشون خیلی خوب شدم بعد یکیشون کارش به دانپیزشک کشیده شده بود که حالش بدتر شده بود ولی حدود 700 گرمه اون یکی گربه که حالش بد شده بود <تصفيق> بعد, بعد الان استاد میگن خیلی خوبه خیلی خوب غذا میخوره یعنی اصلا هیچی هم نمیخورد یعنی حالش بد بوده بعد استاد یه مورد دیگه که البته این دوستام میگفتن میگفتن این گربه ها ساعتی که شما گفتید من حواسم به اینا هست اینا آروم میشینن و چشمشون رو میبندن استاد بهتر از استاد یه ماهی خودمو امتحان کردم اونم در از این ماهی کوچولایی که زود میمیره اونم زنده مونده استاد اونم بله یه دست بزنیم که برحال خب، در مورد آرتروز این هم این آرتروز، میگرن آسم، و تمام این موارد دیگه دوستان سوال نکنن چون بعضا زنگ میزنن، اسمس میزنن که نمیتونم رو آرتروز هم میشه، رو آسمم میشه توضیح دادیم، اینا رو دیگه قرار شد که ما نگیم چی میشه چی نمیشه روی چه چیزهایی کار میشه نمیشه ما فقط قرار تست بکنیم یه بحث تعریف تا گزارش بعدی رو میشنبیم تا گزارش بعدی جادو و معجزه هر عمل خارج از دو چهار تا چهارتا و جادوه و اگر هر کدوم ما الان میبینید که در واقع به یه نوعی داریم میبینید که نه معجزه هم قانونمنده معجزه و جادو هم قانونمنده و ما میتونیم اشراق بهش پیدا بکنیم چون همین فرادرمانی رو وقتی که بازش کنیم به زبان علمی دوباره خودش علمه فعلا الان ما داریم به این صورت نگاه میکنیم درست هر مطلبی که جهان شموله از چهار منظر میتونیم نگاش کنیم از منظر مذهب میتونیم از منظر عرفان میتونیم از منظر فلسفه میتونیم از منظر علم علمم میتونیم از هر چهار زاویه اون چیزی که جهان شموله انسان شموله باید جواب بده یعنی دوچار تناقض نشه درست شد یا نه لذا ما اگر که از این زاویه مذهبی و ارفانی اون دفعه هم مرد سوال بود بهش نگاه کردیم به خاطر که عمدتا ما در شرق میخواییم موضوع رو ببینیم که با اعتقادمون چجوری جور در میاد اول میخوایم از این کانال بگذاریم خب ما هم از این زاویه شروع کردیم. ولی بدونین که این مطلب هم علم امروز با بحث حوشفندی حاکم و جهانه هستیم ما به صورت چیز نگاه میکنیم؟ یک مسئله ای که با ذهن ما سازگار نیست قبلا تجربه نکردیم و فکر میکنیم که چه چیزی هست ولی به زودی اینقدر برای این مسئله ملموس میشه که جز وجودی مون میشه و جز مطالب میشه که یواش یواش بیان اونم به زبان علم فراهم میشه کما اینکه دنیا الان متحوله منتها نمیتونه بگه چی کار دارم میکنم میدونید این اینه مطلبیه دنیا متحوله و دنیا منتظر معجزه است دنیا منتظر اینه که ببینه مشکلاتش راحت تر از این حرفا میتونه حل کنه و خب یه قدم های ابتدایی قدم های از ابتدایی سی سال توش داریم کار میکنه ولی واقعا ابتدایی به حساب میاد چون واقعا یک مقوله خیلی مفصل و معقوله ایست که یه خورده وقت میگیره تا انسان خودشو بهش نزدیک بکنه ولی همونطوری که گفتیم انسان با چهار مقوله انسان این چهار مقوله رو با سر و کار داره روز اول انسان گفتیم چیه؟ عدد رو شناخت بالاتر از عدد یعنی زور زده قبل از این که هیچی نمیشناخ قبل از این هم بگیم قبل از این که اینجا نقطه صفر نقطه صفر که چیزی انسان مادل یه حیوانی بود انسان ها تال میدون قبل از اون اینا که چی. بعد عدد رو کشف کرد عدد. تونست جهان هستی رو به زبان عدد بیان بکنه خب به زبان عدد، فاصله اینجا تا اونجا اینه اونجا اینجا و ساعت و اینها رو اومد زمان رو با عدد بیان کرد فاصله رو با عدد بیان کرد یواشواش تعداد ستارگان، نمیدام چی خلاصه عدد رو آورد تو کار درست یا نه؟ بعد از اون قوانین رو تونست کشف بکنه و به قوانین نزدیک بشه قانون عرش میدوست قوانین مختلف رو اومد چیکار کرد کشف کرد و امروز هوشمندی رو انسان داره کشف میکنه داره متوجه میشه که یه چیزای دیگه هم هست یه مطلب دیگه هم هست که میتونه کشف کنه البته ما توی این قوانی چیزای دیگه هم کشف کردیم خودمون البته قوان کشف کردیم ادالت قانونمند، حکمت قانونمند و این قانون از نظر ما الان تأمین به آم پیدا کرده یعنی تمام مسئله که در ابعاد مذهبه و اینها مطرح میشه قانونمنده و الان تعمیم به آم پیدا کرده از نظر ما حوشمندی رو هم کشف کردیم الان میدونیم که غیر از این چیزایی که تا حالا شناختیم اعداد قانون حوشمندی هم هست بنابراین یکی از تعریف های سر کماله که برای انسان تعریف بکنیم این سر کمال خب؟ که این پله های رو داره میاد اینجا اینو که رسید بعد از این درک بالاترش بسیار بسیار آسوم میشه به طوری که به راحتی میتونه با منبع این قضیه ملموس میشه مثل گزارش سرکار خانم که گفتم اصلا خدا رو قبول نداشتم ولی الان فهمیدم که یه چیزی هست اینو میخوایم هدف اصلی قضیه به اینه اینکه که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند ر... یه جایی رسیم که نگاه بکنیم در همه جا تجلی رو بینیم اما الان سنگ و گل و اینا رو میبینیم یه ذره دیگه هر جا نگاه میکنیم الان ما هر جا رو نگاه میکنیم خودمون حوشمندی میبینیم یعنی دیدمون عوض شده نسبت به قبل یه مرحله بعد یه مرحله بعد اینه که اینه ما تو و لوف هستن ما هر جا نگاه کنیم چی میبینی؟ پرتوبه روی او رو میبینی این دیگه یعنی ملموس میشه برای اون یعنی اونقدر مثل جز زندگیمون میشه جز محور وجودیمون میشه که دیگه بحث این قضیه همونه که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند این سیر رو ما داریم تیم میکنیم سیر تاریخی است که انسان در جهت کمال طی میکنه و این مراحل رو داره عبور میکنه مثلا فرض کنید این توضیح رو داریم که فرزن در عرفامون اطلاعاتی رو دادن آگاهی های رو دادند مثلا مولانا گفت هر یک از ما خود مسیح عالم است هر علم را در کف خود مرهم است حافظ گفت دردم نفته اوفته بهز طبیبان مدعی باشد که از خزانه غیبش دوا کنند و نمیدونم ما خاک را به نظر کیمیا کنیم صد درد را به گوشه چشمی دوا کنیم اینا رو گفتن اما حافظ چند نفر رو درمان کرد مولانا چند نفر رو درمان کرد شما الان همین توی این چند آمار درمانه شما از اون اروپا بالاتره تو همین چند هفته چرا چون اونجا در میانه این قضایه خبرش رو دستسی داشتن خودش رو نبود اما الان به زودی در کوچه و خیابون و هر بچهی هر کسی میتونه بحث حالا این ارتباط ویژه ما رو نمیدونم ارتباط ویژه رو دوستان در جران هستین استفاده میکنین به دوستانتون ارتباط ویژه شبهایی که فرداش تعطیل ارتباط ویژه داریم از ده شب تا شیش صبح هر کسی رو دعوت بکنین تو این ارتباط دیگه اسمشون دیگه لازم نیست به معنی که هر جایی که حرف چشمشو ببنده ارتباط متوجه میشه و یه کاره صورت میگیره این ارتباط بی... نشدید نو ای داد, داد پس پسمون خیلی ده. خب نداره حالا در جریان قرار بگیرین که البته الان ویجاست ولی در آینده نزدیک همه وقت میشه الان اینجوریه که فقط برای زمان گذاشتیم حالا شبایگ فرداش تحتیله به تحتیلات خودمون به تعطیلات حالا شما میخوایم تورنتو تشریف برین؟ نه با اونجا، نه با خودمون بنابراین، این در آینده نزدیکی تحولات بزرگی در پیشه یعنی 24 ساعته در هر جایی بنابراین، حالا اونم برای خودشی حلقه و یک مسئله خاصی داره این میشه زبان رایج انسان زبان رایج انسان میشه زبان هوشمندی و حالا این خیلی حرف داره خیلی صحبت داره درست شد یا نه؟ بنابراین این مسیر رو ما داریم طی میکنیم و شما الان از هم با وجودی که سی سال از این قضیه میگذره ولی ما جده استفاده از پیش هستیم که یعنی اولین گروهایی هستیم که به این سرزمین یا اومدیم روی این پله درسته حالا چندین هزار نفر به این دیدگاه مجهز شدند ولی خب نسبت به کل کل داریم صحبت میکنیم اولین گروهایی که پاشون به روی این پله رسیده و دارن این مسئله رو اینجا تو این سرزمین جدید دارن دنبال می‌گردن اینجا چه جور جایی است خب و اینها البته در تاریخ ثبت و ضبط میشه و تمام وقایع و حوادث اینی که ما به این سرزمین جدید پا گذاشتیم مثل همه وقایع دیگه که در تاریخ علم ثبت و ضبط شده اینها همه ثبت و ضبط خواهد شد و خلاصه جزء مستندات تاریخ علم خواهد شد. گزارشی رو بشنویم بعد بیام دوباره جزیم بفرمایید من پنجشنبه گذشته به یک از دوستام زنگ زدم بعد برگشت گفتش که ساعت یازده صبح بود گفتش که من پدرم توی بیمارستان قسمت سی سی خوابیده به خاطر مشکل ریه من میگم فرودرمانی کار کنیم گفتم خب میخوای کار کنم گفتش که آخه نکنه بدتر بشه گفتم خب ممکنه بدتر بشه گفت پس حالا دست نگردم من زار فکر کنم بعد بهت خبر میدم این دیگه اصلا به من خبر نداد و من شروع کردم با خودم گفتم خب از سی سی بدتر که دیگه نمیشه بزن من کار کنم ساعت 12 نیمه شب پدر ایشون از بیمارستان یعنی یه دفعه گفته که که من حالم خوبه اجازه بدین من برم خونه و رفته خونه یعنی ساعت دوازنیز میشه با پای سالم با پای خودش رفت خونه و که ده... این دوست من برگشت گفتم گفتم این لادن حتما یک کاری کرده <تصفح> <تصفح> و اینکه الان حالش نه اینکه خوب شده باشه ولی دیگه اصلا با دارو و بیمارستان و اینا اصلا فعلا هیچ کاری بله یعنی رو بیماری اینجوری هم کار کنی بله خیلی ممنون خیلی متکر خب دستو نمیخوام بزنیم خیلی همین خیلی مشکل خب دیگه باز گزارش مورد امتحان الهی قرار بگیریم و برسیم به خدا یا بدون امتحان به اونجان رسیم اصولاً به طور خودکار تا تعریف ما از امتحان چی باشه به طور خودکار ما تو این اقیانوسی که قرار داریم اقیانوس دیگه زندگی اقیانوسی. ما تو این اقیانوسی که قرار داریم در معرض انواج سگیین به طور اتوماتیک و خودکار قرار میگیریم. الان ببینید برای همینی که ما این هوشمندی رو ثابت بکنیم، ببینید الان در چند جه ما داریم میجنگیم برای اینکه اینجا همین کلمه حرف رو به شما بهصل عرضه بکنیم خب این آزمایش علاییه حالا، شما هم که میشنوین حالا اسمش آزمایش الهی برای اینکه هستی هستی الهیه من اینکه حالا فرزن بر تعیین کرده باشن که چی چیزی رو سر رای من قرار بدن چی چیزی رو سر رای شما قرار بدن بنابراین هممون خودکار و اتوماتیک در معرض آزمایش قرار میگیریم شما که اینجا نشستید یه جور اون که با مادر می جنگه یه جور اون که نمیدونم چی هست و یه جور هر کسی در هر جایی که هست به یه شکلی در معرض این آزمایش قرار میگیره و حالا تاریخ هم با دقت زیاد لحظه و لحظه همه چی رو ثبت میکنه. مثلا شما الان می دونید که در مقابل داروین دقیقا نام مخالفین که در اومدن گفتن که پس جناب داروین اینطور که میگیر نمیدونم انسان نسل میمونه هنوز تو کتاب ثبته. عالمی که این حرف و زد، دکتوری که این حرف و زد، اسمش سبته و به نام عالم جاهل در تاریخ اسمش برای عبد اونجا سبته خب، چون ما در همه جا دو نو چند نو چیز داریم در واقع مبارزه با حق، مبارزه با علم، این چیزا رو که داریم به صورت‌های مختلف انجام میشه و ما ابن مولجم داریم ابن مولجم ابن کسی است که به نام حق در مقابل حق وای میسته خب بعضیا ها نااگاه هن بعضی ها آگاه اناد آشکار دارن اناد آشکار مثل فرعون و بعضی نه به نام مثلا فسکون اگه در مقابل حق باستادن به نام حق جلوی حق بمیستن به نام علم جلوی علم باید میسن اینا میشن ابن های علم ابن های ابن ملجم خودش یک تعریفی داره یه مسئله داره یه قضایه داره و شما میبینید که علم دنیای علم همواره با ابن ملجم های خودش روبرو بوده یعنی کسانی که به نام علم جلوی پیشرفت علم رو گرفتن توجه فرمودین، مثلا فرض کنید که در مواجه با آنتوان موسمر در مسئله هیپنوتیزم آکادمی علمی فرانسه نظر داد یعنی مأموریت پیدا کرد که گزارش بده گزارش دادن که این کار است. هنوز این لکه ننگ به دامن آکادمی علمی فرانسه سبت و زبطه و اسامی کسانی که از من لوازم شیمیدانم جز اینا بوده هنوز این اثر ننگین در تاریخ ثبت و ضبطه بنابراین در حالی که امروز دیگه هیپنوترپی و نمیدونم بی پروتیسم و اینا رو متعارف شدن که بابا وجود داشته و در واقع همین گزارش باعث شد که چند قرن انسان از شناخت ناخودآگاهی و یک مسائلی چی بشه؟ عقب بیفته حالا اینو در مورد تاریخ علم شما در مورد تمام اختراع، در مورد تمام اکتشافات، در مورد چرخ خیاتی وقتی که سازنده ساخت در بسلا پاریس چیکارش کردن؟ حالا مفصل که کتک خورده دستگاهش هم خورد کردن از طریق خیاتا مورد حمله قرار گرفت که اگر این دستگاهی که تو اختراک کردی این بیاد برای برداری برسه بر برداری برسه ما بیکار میشیم آیا بیکار شدن بیکار نشدن و این تنگ یا این مسائل هست یک کلام بزرگتر مشکل مشکل این نیست که کسی نادان باشه مثلا هیچ آدم نادانی به علم ضربه نزده انقدر که علما ضربه زدن توجه می کنید مثلا ما در پیشرفت علمی یک کارگر نمی دونم ساده یا نمی دونم کشاباز نمی دونم چیزیه که نمی مده بگه نخیر آقای داروین اینجوری نیست آقای نمی دونم اینجوری نیست, آقای دارم پلان این نیست. آقای دکتر ساموئل من اینجوری نیست دکتر نمی دونم فلان اینجوری نیست بلکه کسانی جلوی راه رو گرفتن که عالم بودن و اونقدر که علما به پیشرفت علم ضربه زدند جاهل ها ضربه نزدند و اینقدر متوقف کردن ولی هیچ وقت نتونستن پیروز بشن هیچ وقت نتونستن که همیشه با روسیه تمام عقب نشینی در نهایت کردن خب حالا به این یه مسئله است که انسان باید چیکار بکنه اونا که پیشاهنگ هستن اونایی که جلوتر جلو در میان مسلما یه سختی هایی رو دارند مثلا الان شما داریم مثلا ممکنه ما به یکی بگیم از خرمونم بکنیم ولی پنج سال دیگه اینجوری نیست خب، به هر حال اگر که ما خواهان پیشرفت بشر باشیم لازم میشه پیه حماقتم به تنمون بمالیم پیه تغییرم یه جای به تنمون بمالیم و مبارزه و اینه که شما این فران آزمایش الهی اصولا یه مطلب میاد این وسط هر کسی اظهار نظری که میکنه خودشون میبره زیر یه دینی. پس باید درست اظهار نظر بکنه. خب باید درست قضاوت بکنه برای اینکه مدیون میشه میره زیر دین و خب پس بنابراین میبینیم که هر کل و و گل و مسئول هممون داره میبینیم هممون هم, هم مسئولیم و های مختلفی میگیریم این های مختلفی که ما میگیریم در واقع همونه که شما فرمودید آزمایش آزمایش دیگه شاخ نداره همینه دیگه همینه یک مطلبی رو شما تجربه کردید به یکی میگی همین طبق این گزارش ها چیز میکنه استفاده میکنه بارشون میبنده میره یکی شروع میکنه مسخره کردن و دست رو دل گذاشتن و قش و زفت کردن و چی داره میگه درسته؟ و ایسا مسیح علیه السلام میفرمان تا مثل کودکان ساده نشوید ملکوت خدا را نخواهید ملکوت خدا چیه؟ ملکوت خدا یه دسترسی هاییست یه دسترسی هاییست که اونجا چون ما ذهنمون با ملکوت و بهشت و اینا رو ای هزی میکنیم یا شده که بله سادگی نعمت بزرگی است خب سادگی نعمت بزرگی است و یک پیچیدگی باعث چقدر زحمت بکشی تا سادهش کنی یه درخت باید بیان هرسش کنن سادهش کنن شاخهای اضافیشو شاخ و برگای اضافیشو بزنن تا رشد بکنه خب، حالا سادگی مشکل داره یا پیچیدگی؟ خب، بنابراین سادگی، ذهن ساده قابلیت رشد داره ذهن پیچیده تو پیچیدگی خودش اینقدر میپیچه میپیچه می یه می چی دیگه به تنه تنهدگی یاد بکنه تو خودش اینقدر میتنه که دیگه ازدنی میدونه چه کار بکنه و آخر به چه کنم چه میفته زین ساده کمتر به چه کنم چه کنم میوپته شما اگه دقت کرده باشین میگن هر خیلی زرنگه همیشه پاش تو چاله است خب به دلیل همینی که اینقدر پیچیده که آخر خودشون این چیزی رو که میپیچه چیکار میکنه؟ گیر میکنه خب بریم سراغی که دو سه تا هم گزارش قشنگ بشویم من روی ام کار کردم استر... بله احسن این گزارش رو ببینیم بفرمایید بعد، الان حدود 20 روزه در واقع روشون کار کردم اولش که یه اتفاق جالب بود که مکه رو دید که یه نوری از روی خونه مکه میره بالا ولی بعدش یه سری استرابا و ترسای وحشدنایی سراغش اومد که میگو نمیتونم دوام بیارم از توی این ماجره هنوز ترسیشینای ادامه داره هکم و زیاد میشه ولی فشار خونشون همیشه حدود 19-20 بود الان حدود یه هفته است روی آزدن متوقف مونده. خایه چاپشونو که جم نمیکرد اصلا جم میتونه بکنه. بعد یه لحظاتی خیلی عصبی بود و افسورده. وقتی این ترسا تموم میشه پر از نشاط این حالتا رو داره. ولی خب هنوزم اون وحشتش انقدر زیاده که هر بار میگیره زنگ میزنه میگه می, می, می با این که این سگ دوباره پاچه من گرفت. اینجوری چیز میکنه که میگه احساس میکنم یه دقیقه دیگه کسی میخواد منو اعدام کنه. انقدر وحشت سراغش میاد. من اینا مترکم میشه بخاطر اینکه تجربه خودم بشه که من به همین شکل در واقع ادامه داشته باشه قضیهش خودش هر روز روزی دو سه بار نشست حد اقل داره توی بله، وله احسن که بله. خب من اینو یه توضیح بدم خدمتون ما در مورد MS نتیجه خوب داریم نتیجه داریم که ظرف یکی دو هفته معلوم میشه یعنی اصولاً به طور کلی ما در فرادرمانی در عرض یک هفته حالا نه دو هفته متوجه میشیم که اصلا کار ما مفید هست یا مفید نیست درست یا نه؟ دوستهایی که تجربه کردن همین تو بود یا نبود یعنی نیاز نیست بگیم شیش ماه یک ماه حالا ما باید یک ماه کار کنیم ببینیم چی میشه نه نه ظرف یکی دو هفته مشخص میشه که این وسط ما میتونیم نتیجهی داشته باشیم یا نه متحد. اما ترسوشون بنام ریشه ترسشون چیه؟ من الان خدمت میگم اما بعضی از کیس های بیماری هایی ما فقط مشکلمون خود بیماری فرد نیست توجه میکنید مسائل سانویه و, و چندین کیس رو ما داریم مثلا بیماره MSC حتما افسردم هست حتما ناامید هست و حالا از نقطه نظر ما آلودگی های دیگه هم داره که معرووط به دورای مختلف دیگه هم میشه که حالا کاری اصلا با اون صحبتا نداریم. من میخوام بگم که شما بعضی از کییس ها کیهایی هستند که اونها رو بر اساس اطلاعاتی که راجع بیماری خودشون دارن کاملا ناامید شدن، کاملا اونها رو ناامید کردند و اینا رفتن راجع بیماریشون تحقیق کردند، دیدن که بله این پوشش مایلین عصب خشکیده از اربین ربته عصب خشکیده لزمه سیستم برقه که قطع شده باشه خوش سیم برقی که قطع شده دیگه وصل نمیشه که خب این حساب اونا دو, دو تا چهار تا درسته لذا دیگه دو چهار ناامیدی و دو چهار یأس میشن ولی اگر اینطوره چطوریه جون که پاش خم نمیشوده پاشو خم کردی بله بله نه خودش مطمئنه که اصلا نمیبینه بنابر این اگه یادتون باشه ما راجع به سیستم عصبی ثانویه با هم صحبت کردیم و توی کاربورد ها اینجا چیزایی که نوشتیم از جمله نوشتیم ام اس ضایعات مغزی و اینا نوشتیم از جمله نوشتیم ام اس ببینید پس ممکنه یه کارای صورت بگیره که از حوزه علم ما خارج باشه هنوز دنیای علم سیستم عصبی سانویه رو نمیشناسه این تئوری ماست این تز ماست این نظریه ماست که باید به اثبات برسه باید بریم نشون بدیم پس انسان حالا فرض کنید که ما چون گزارش بذاریم رو هم دیگه یه مورد دو تا سه تا چهار تا نیست چون زیاده پس احتمال بدیم یک درصد احتمال بدیم یه چیزایی هست که ما خبر نداریم حالا ما در وقتی میخوایم با این بیمار برخورد بکنیم مشکلمون اینه که صد ناامیدی و صد افسردگی اونو چگاه کنیم بشکنیم بتونیم از این حریمش که دور خودش کشیده بتونیم عبور کنیم این مسئله ما این سد بسیار مستقمتر و مشکلتر شکستنش تا بحث خود بیمارش اگر این صد رو شکستیم اون وقت میبینیم که خود مثله بیمارش همین که در این مورد هست و گزارش هست الان جذب شده چرا جذب شده؟ چون یه چیزهایی داره میبینه جذب شده و بعد اگر که بتونیم افسوردگی ناشم از بین سریعا از بین میبریم کانال هایی رو که براش کار گذاشته میشه یادتون باشه توضیح دادم کانال هایی که از دست کار گذاشته میشه و چششو بنده کانال هاشو میبینه یعنی میبینه که این کانال ها از دست مغز از پا اینا اومده یعنی سیستم عصبی سویه الان کنترول رو داره تا ما بریم فرصت داشته باشیم که ببینیم ترمیم صورت گرفته یا نگرفته حالا ما کسایی که داریم مثلا اینکه از اعضای پزشکی پزشکیمون یکی از آقای دکترامون خودش MSC بوده و الان خود میره میاد سالم راحته و خب عکس قبلیشو داره چیزای قبلیشو داره ولی میگه من دیگه حاضر نیستم برم عکس بعدی بندازم تازه الان در نوشتن پروپوزالای برای ایشون به صلاح فعالیت زیادی داره باعث است که داره میره میاد و میگه که خب من اینقدر اینجا چیز بوده این اینجا اینجا اینجا اینجا اشکاله که خب من خودم پزشکم میدونم دیگه حاضر نیست بره یه عکس دیگه باز تا ببینیم که چه ترمیمایی صورت گرفته. حالا من حالا در بالاخره در آینده امسال اینا رو وادارشون بکنیم که وادارشون کنیم برن عکس بندام ببینیم که ترمیم شده یا نشده هر کسی رو که ما کار کردیم خوشید دیگه حاضر نشده بره. <تصفح> حاضر نشده بره که امارائی بکنه که ما بفهمیم که، این ترمیمم چقدر شده همین که میره میاد میگه که من اینجوری ناراحت میشیدم، گرمان ناراحتام می‌کرد، این میشد، اون میشد، الان نیست دیگه. حالا که من دارم میرم رو میام، روپیل ویلچر نیستم، روی چیز نیو افتادم خود که برای چه میگه برام ببینم که چه اتفاقاتی افتاده و عوارض جانبی و هزینه و مسائل دیگه رو بجونم بخرم. درستی بود. من فقط این افسور دیگه با همین ارتباطات در طرف میشه و ناامیدشون دیگه. درسته؟ چندબર گفتیم که افسور شون تحت تأسیز و درمان قرار گرفته خب خب هم دیگه همینه دیگه اینه دیگه پس الان برای ما ثابت میشه که روان این مربوط افسردگی و استراب دلشور استرابینا نگران اینا به روان مربوط میشه طبق تقسیمای ما و بحث ذهن هم که گفتیم ذهن جداست ببینید ما اینا رو جداست در از نظر ما ولی تو, تو روان پزشکی روانپزشکی میگه که آقا مثلا بیماری رو روانی همه رو رددید میکنه ولی از نظر ما ذهن وسواس توهم، دو شخصیتی چند شخصیتی نمیدونم ترس های غیرمنطقی رفتار های غیرعادی اینا دیگه میشه زن فراموش نکنید، این تسیم بنج ما یه مقداری فرق میکنه و اونها درمانشون درمان ذنی هم ح فظش هم فرق میکنه یه مقداری. و دوباره عود میکنه توجه بکنید توجه بفرمایید که یک مسئله هست که شما این دورهی رو که یعنی این در مورد فرزند در مورد MS این طوریه یعنی داره سقوط میکنه این دایه خوردهی بهتر میشه داره سقوط میکنه این دایه خوردهی بهتر میشه اما شما اگر تونستین این تغییر رو ایجاد بکنید خب اینجا اومده مثلا حالا در هر جا اومده شما یه دفعه اینجوری تغییر ایجاد کردید اینو دیگه کسی نمیتونه بگه البته چرا در رد صحبت شما ممکنه هر حرفی بزنن خب یعنی برای اینکه یه چیز رو ردش کنن ایشون توی، تو چقدر شما کار کردیم زانوش رو خم راست کردیم این یه دفعه نیست این چیزی که رفت و برگشتیه زمان بره توی یه جلسه شما نمیتونید یه بیماره MSC رو را بندازین، توجه میکنید خود ماهیت بیماریش دوری که یه مدت خوب میشن بعد دوباره عود میکنه. ببینید متوجه منظور من نشدیم دوستان متوجه منظور من شدن این یک مسئله تدریجیه شما یه دفعه اینجا پیدا میشید مسیر رو عوض میکنید این دیگه خب ما الان داریم دیگه مواردی رو ما الان مسئله شده در خوبشون داره میره میاد خب این چه چیزیه که از اون قبلی دیگه پیروی نمیکنه؟ این اومد اینجا تغییر پیدا کرد درست میگم؟ خب بنابراین این مسئله اینطوریه و نهایت قضیه اینه که برد به فعالیت طبیعی خودش برگردی این, این مسئله است در حالی که در شرایط عادی امکان نداره دیگه کسی برگرده به شرایط طبیعی خودش در حالتی که شما میفرمایید روز به روز بد و بد و بد و بدتر حالا اگه ذره خوب میشه خوب شدنی های طولانی مدت مختیه بفرماید میکروفونو اگه خدمتون والا م... من فکر میکنم که همه همه دوستان بشنون اگر میکروفونو بده خدمت خب شما فقط گزارششون در مورد MS یا مواردی دیگه هم موارد بود بذارید ما گزارششون رو بعد تکمیل کنیم میکروفون رو به من بدین گزارششون رو تکمیل کنیم بعد بیم خدمت شما خدمت شما از مواردی که کار کردم دردای موقتی عصبی بود اصلا سردرد بود، سرما خوردگی بود، درد بود، درد بود و یه موردم نه خود سه مورد بخشه مشکل معده بود که خیلی سریع جواب میداد یعنی سه دقیقه‌م تو نمیکشید که اون رو به دست میآوردن بله بعد این مشکل مثلا بیماری زنان بود که اونم البته یه یک ساعت و دو ساعتی کار کردم به طور معجزه مثلا مشکلشون حل شده بود قضیه بله بله خیلی ممنون آش. کسی روی فیبروم روی کیس روی اینجور کیسا کار کرده بله بله البته اینجا دو تا چیز داریم که نشون میده در واقع دو تا آزمایش که قبل و بعد که در یه مورد دیده شده در مورد بعدی دیده نشده این هم یکیس دیگه است که همینطور و قبل و بعد هست که دیده نشده خب اینا را کهیس که داریم چیز داریم حتی دوستان میدونن که آره شد برحال دوستان هم به بخش یه سوال داشتم ولی نمیخواستم بکنم اما دیدم مجبورم اگه کسی به پرخوری عادت داشته باشه میتونیم ما اونو در هوشمندی قرار بدیم موضوع بله توضیح اون دفعه هم در توضیحی دادم ولی بله امروز هم راجع بیماری نورووبزاری بیماری دادگاهی بیماری مختلف توضیح میدیم که اینا هم جزوش بازم اشاره میکنم بله مکانیزمش می بله. رو توضیح میدیم اگر نورووبزاری باشه که بله میشه و آمارش هم من از دوستان میگیرم منتظر بذارید اول تعریف کنم از آمارشو از دو خودمون بگیریم ببینیم که چه تغییرات در زمینه اشتها آیا تغییراتی داشتیم یا نداشتیم چنا داشتیم در زمینه اشتها تغییر در زمینه اشتها خب حالا تغییر در زم... بذارید من موضوعشو بگم بعد بهتر آمار میتونیم دیگه بگیریم. سوال دیگه یه هم داشتم این که من پسرم از بیرون گفت خود سرم درد میکنه یا بی... سرد با پدرش دیر اومده بودن. دستم گذاشتم رو پیشونیش گفتم بذار ببینم انرژی بدم انرژی، البته ب... بله، ارتباط بدم با شبکه هوشمندی ببینم چی. ولی چون از بس به من اونا اینو نمیدونن هم همسرم میشون و هم پسرم به من میگن بیا باز انرژی بده ما حالمون خوب بشه. باید. میگم نه انرژی نیست من شما رو ارتباط میدم با شبکه هوشمندی. من تو او به خدایی که اعتقاد دارید من به این میگم زیاد هاشیم بله بسیار. پسرم گفت وقتی دست تو گذاشتی رو سرم سر من بدتر درد گرفت اما همسرم گفت میاد که خونه میگه پاهاشو که دراز میکنه مثلا میگه پام خوب میشه میگم خب من از راه دورم دارم کار میکنم شما رو ارتباط میدم با این شبکه میگه نه این دستی که تو روی زانی من گذاشتی اون به من آرامش میده، من احساس خوبی میکنم منم ناراحت میشم، میگم بابا من رفتم کلاس من دارم یاد میگیرم، ارتباط میدم دیگه وقتی میگن نه دست تو من دیگه بهش ارتباط نمیدم میگم خدا بست <تصفيق> بسیار عالی، بسیار عالی. بفرمایید، بفرمایید. گزارشه. ببخشید. من می‌خواستم ببینم اگه کسی که ما تو این حلقه بیاریم اسمشو اونم میتونه برای دیگران درمان کنه؟ خیر. به اصطلاح ببینید بحث حفاظی، بحث خیلی مهمه تو این قضیه. اگر خاطرتون باشه توضیح دادیم راجبه روان, روان شناستا، تندام پزشکا، افرادی که با دیگران در ارتباط چش تو چشم و اینها زیاد هستن، مثلا با روانشناس ها و روانپزشکگاه که کار مستقیم بالینی دارند اینها حتما در معرض آلودگی قرار می گیرن. و اگر توجه بکنید کسایی که حالا تو این غذا هستند کسانی که در کار تشریح هستند حتما دچار آلودگی های خاصی آلودگی های و آلودگی های مختلفی که تعریف می کنیمیم میشن. و اینها به صلاح این حفاظا رو ندارند، و در معرض آلودگی قرار میگیرند بگرم شنای من که خب خب سوالم بپوشترد بفرماند، حالا بفرماند تا میکروفون، بفرماند خب اینایی که حالا به نوعی حالا شفا پیدا کردن یعنی حالا میشه میشود که خیلی خوب خوب فبر مورد ولی اونایی که نمیشن، یعنی الان مقاومت میکنن اونا رج کارشون می‌کنیم اون چند تا هایی که هستم ما چه های خودمون که حالا میان پیشمون باهاشون کار میکنیم که به هیچ شکلی نتیجه نگرفتن و هم که اصلا دورو من اصلا اصولا خیلی مقاومه و اصلا قبول ندارن و به هیچ عنوان نمیشه باهاشون ارتباط برقرار بکنی میخوام ببینم که چیکار باید بکنم آیا باید یک سماجتی رو به بدم با مراجعه داشته باشم همچنان یا نه بزرمشون کنار دیگه ببینید یه موضوع است که با مدعی نگویید اثار عشق و مستی تا بی خبر بمیرد از درد خود پرستی خب این اصول کلیه کسی که است و میگه نه نیست و اینا کلا فعلا محروم بمونه بهتره ولی یک موقع که شما احساس میکنید که نزدیک بلاخره همسر خواهر، برادر پدر مادر شما میخواید یه جوری براش کار بکنید خب در این صورت اسمشو میذارید تو لیستتون میشه یه طرفه چند نفر با موارد یه طرفه کار کردن نتیجه گرفتن خب الانشون که فرمودن خیلی حاج خانم خیلی خب ببینید میشه منطقه ها الان چند نفر دو طرفه کار کردن نتیجه گرفتن دستشونو بلند کنن خب ببینید تقریبا یه آماری که نشون میده مثلا یه طرفا نصفه مثلا ورز کنید کسی که دو طرف کار کرده بین دو تا سه برابر شانسش بیشتره اینا آماره دیگه ببینید <تصفح> آمار در کمان زبان علم همون آماره مطمئن باشین این آماره که میگیریم درسته خب چیکارشون باید بکنیم؟ چیکار باید, باید بکنیم دیگه زوری که نمیشه دیگه نهایت اینه که شما یه طرفه اسمشو بذارید توی لیستتون یه طرفه کار کنید براشون طلب خیر این در واقع این مفهوم این که برایش کار می دیگه متایی یه طرف از خودش نمی دیگه خب حالا ما که خودمون بقول شما به صلاح شما حالا روان شناس ها و اینا تحت تحصیل همشه تشورت منفی هستن چی کار بکنیم که این ها به ما نرسه یعنی تشورت منفی ببینید خب ما اصولا در معرض تششوات منفی هستیم یه جنگی در آینده داریم جنگ تششواتی که دیگه این عصر پامون رو گداشیم در عصر نوین یعنی وارد شدیم دیگه ببینیم زبان زبان تششوات رو داریم میفهمیم و داریم خیلی مسائل رو با زبانی حال باش برخورد می و انسان در آینده با مباحث جدیدی آشنا میشه مثل جنگ تششواتی که در واقع در معرض و منفی قرار دادن در درمد و مثبت قرار دادن این یه چیزیست که به زودی باش دست بگیره به زودی که عرضه در طول تاریخم بوده ها ولی الان دیگه یواش یواش این موضوع خیلی جدییت پیدا میکنه الان شما ببینید ارا دو برای اون کار میکنین چند نفر کار کردن یک گره رو باز کردن چند نفر دارن کار میکنن گره ایجاد بکنن این امکان داره میدونید که برال در طول تاریخ اینطوریه به یه طرف میتونید وصل بشید گیره ببندی یه طرف میتونید وصل گره رو باز کنید. اینا دیگه الان این تجربه یه طرف ها رو من سررفند مد نظر شما قرار میده اونم تو همین جمع خودمون. حالا ببینید کارهای آگاهانه هست که ببندی باز کنید. این مسئله چند افرش شنیدن که بستنشون باور بکنید حالا به زودی بهتون میگیم که اگر عمری بود بهتون میگیم که نه اینطوری نیست ما بستن داریم باز کردن داریم زبان بند نشنیدین نمیدونم چی؟ نه؟ بله سیاه کردن نشنیدین حالا سیاه کرد خب نه اه اه اینا رو با مفاهم عملیش آشنا میشین ترم بعد ببخشید دوست داد بزار من میکروپون میدم خدمتون این صورتون صبح صبح. تمام میشه من میکروپون میدم خدمتون گذارش بدهیم بفرمش, بفرمش. من مادر بزرگم سرطان دهان داشت و دهانش بسیار وحشتناک شد. به که تمامش زخم بود زخمای خیلی شدید اول کفتن که قارچ قارچ خیلی خطرناکه ولی باید متوجه شدن که کنسر هستش. من فقط با همین اتصالایی که خودم از راه دور به ایشون میدادم زخمش فقط شده یکی و خیلی هم بهتر شده، خیلی بهتر شده پوست و استخون بود، الان میتونه غذا بخوره، یه دو هفته هست که میتونه غذا بخوره نمونه برداری هم میخواستن ازش بکنن ولی الان حتی میگن که شاید این کنسر نباشه، یعنی yani انقدر بهبود پیدا کرده که همه پزشکا که گفته بودن این کانسره گفتن شاید کنسر نبوده که انقدر خوب شده آخوی، مرنگو نمیدونه کنسر به این سرعت خوب بشه؟ بله، زمن این که... <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> جا بله خیلی روحیشون خوب شده، صورتشون خیلی بشاش میشه و همیشه وقتی که من مادرم میره کنارشون میگم شما دست بهشون از فقط دقت بکن. یه مثل یه بچه آروم میشه و اکثران هم میخوابه ولی واقعا زخم دهانشون خوب شده و خونریزیای شدیدی داشتن که با اتصالاتی که من دادم بهشون به محض که میگن خونریزی کرده تا من ایشون رو به که و حلقه وصل میکنم خوداشده زرف ده دقیقه میگن خونریزیش قطع شده و الان یک هفته ده روزی که دیگرم خونریزی نداشته بله بسیار بسیار عالی دیگه این هم در این مور او یکی میکروفون کجا هاست ها بله باشه، باشه، باشه،, باشه من باشی بفرمید اوز یه سوالی داشتم در مورد کسایی که حضوری اتصاد رو حس میکنن ولی بعد که ساعت ازشون میگیریم واسه اتصالات بعدی حس نمیکنن درسته درسته زیادی داشتم من بله درسته ببینید ببخشی. یه گرده این مشکلات ذهنی دارن به این صورت که افراد مثلا اگه شما مقابلش قرار بگیری مثلا اگه بگید جلو اگه دستت بالاخره روزتری بالاخره در معرض دیدش باشی این فیلتره میگه خب روبرومه دیگه شما اگه بگی من الان تو رو یک چیزی میدم خب به نهایتا میگه خب بالاخره لابودشونی چیزی هست یه قضیه میاد اما اگه بگی من دهمت میرم اون طرفتر اون اونجا داره پردازش میکنه که خب چطوری دهمت میخواد اون چی به من برسه اگه بگی من اون طرف شهرم از اون طرف شهر به ارتباط میدم این پردازش میکنه میگه این دیگه غیر ممکنه احسن. یه دیوار بین ما قرار بگیره این پردازش میکنه قفله دیگه برنامه‌ای که اینجا داره برنامه دو, دو تا چهار تا است خب برنامه‌ای است که نمیتونه بپذیره شما چطوری میخار از پشت این دیوار این جریانو برایشون ببریسی حالا شما مخاطب میای برای این توضیح بده که بابا با این اصلا ماجرا چیه چطوریه تا بخواد اون برنامه تغییر بشه از نو ریسیت بشه و چیز دیگه جای جایگزین بشه خب این زمان میخواد لذا اگه حضوراً همین اتصال حضوری رو تکرار بکنیم یعنی... بله حالا بالاخره توضوری بعد بالاخره در یه جایی هم ارتباطش برقرام میشه چشمش بس شما بذاریم بره بذاریم بریم خب بچه شما میکنم اینه که ای شما نبودید ارتباط هم خب خب برقرار بوده حالا بعضی هستن اگه تلفن مثلا رای دور هم شما دستت باشه متحده میشه اما اگه بگه خالا تلفن رو میذاریم بدون تلفن نمیتونیم یعنی این مشکلات افراده الان آمار ما نشون میده که نه مشکلی نیست واقعا رای دور نزدیک آیا رای دور و نزدیک با هم فرق داشت؟ درسته؟ من خب همین سوالی نشدنی ولی وقتی ببینید این یک دیگه میشه یک میشه که شما افراد وقتی عقل تو کار نیست عقلشون رو فلج کرده باشید نتیجه میگیرید مثلا بچه ها چند نفر با بچه ها کار کردن با اطفال خب خوب نتیجه میداد یا نه اطوال برای اینکه این تحضی و تحلیل بزرگار رو ندارن اطوال خوب جواب میده خوب مثلا اون دفعه گفتیم بیمار کمایه جواب میده آدمی که چیز جواب نمیده چرا؟ چون این عامل مزاحم عقل رو داره شما چند افر روش قافلگیری استفاده کردن؟ قافلگیری استفاده کردن؟ نتیجه از چجوری بود؟ بهتر از مورد غیر گیری بود چرا چون شما تونسین عقلو فلج کنید عقلش نیاد تو کار اگر عقلشو، علمشو، علمش اینا بیاد تو کار کار خرابه علت اینه علت در این مورد اینه خب بفرمایید استاد من یک گزارش در دخترم چند روز پیش داشتیم میرفتیم با یکی از اقوامون بیرون این دستش لایه در ماشین که اصلا من یه لحظه دستم این دیگه ناخونش سیاه میشه میوفته همون موقع همسرم هم این کلاس ها اومدن سریع بهش ارتباط این بچه زف کرده بودن وقتی ارتباطات چند ثانیه بعدش اصلا ساکت شد سا انگار نه انگار مثلا 60 این لای درمونه که اون فامیله گفتش که بچه هم زیاد زمین می‌خوره این وردا که خوندین مثلا بگین برای این بخوره. ولی اصلاً هیچ اثری روش نموند یعنی سیاه شد یا باد کنه قرمز بشه هیچی نشد بله بله خیلی ممنون خیلی مشکل مشکل جانم بفرمایید میکروفونم لوت بکنید بدید عقب تا میکروفون میکروفون کجاست میکروفون رو بدید بیاد این جلو آقای اون گزارش نداشتن؟ یک بدهید خدمت آقای این آبروم رو حفظ کنیم بابا آقای اون البته چیدم از خانوم شاید به آقایون اون مجال نمیدن دنه این هم با اون هم کم نمیارنه اینجور فکر نکنید ببفرمایید ببخشید من روی بچه‌ای کار کردم که حدود چهار سال و نیمش بود، زبون باز نکرده بود هنوز. یعنی حتی قدرت تکلم خوب نداشت. حدود یک هفته یک هفته و نیم هر شب بین ارتباط می‌دادم و الان دو سه روز شیدم که کلماتو خیلی کامل ادا کند حتی لثق زبونش کاملاً باز شده. در صدری پیش هر دکتری بردن هیچ نتیجه‌ای نگرفته بودن. بله بله اینم جالبه، جالب, جالب توی کیسا که بله تو ب تمام تمام بگم حالا یه هم به منم بدین که منم زبونم باز بشه. یادتون باشه اسم رو ببخشید به برسی. من قبل از همه چی میخواستم تشکر <تص> کنم چون بعد از سالیانه درست که دخترم می کلی درس روزد داشت و غونریزی داشت. و بارها با شما صحبت میکرد که من چرا خوب نشدم مامان عرشی رو من کار میکنه. امروز صبح که به همزه این زد گفت خیلی تغییر کردم که الان اونجا نشسته مخواست خودش از حالش به شما با. و واقعا ممنونم و خدا رو سپاس میگم چون من کراسای خیلی زیادی رفتم خیلی جاها رفتم با انرژی درمان خیلی منوس بودم ولی از موقعی که اینجا آمدم خیلی بیماریایی که قبلا باشون کار میکردم مقتعی خوب میشدن الان خدا شد خوب خوبن و دست پسرم یک هفته پ ایران میخواستن جراحیش بکنن بعد به من که خبر دادن رفتم بیمارستان به مخصم که رستم تو فاصله که با آجانس می رفتم رو دادم بیمارستان که رفتیم گفت مامان از اینجا بریم اختر من ببینم اونجا چی میگن اختر که رفتیم گفتن اصلا جراحی نمیخواد بله. و همونجا گفتن فقط بخی نگاه که کردم حتی بخیم گفتن نمیخواد یعنی جوش خورد بلا فاصله بله. بعد از یک هفته خواهرش اینجا شاهده و میدونه. که توی تمام فامیلی فامیل پیچید. بعدش این تو بیمارستان ایران می زیر ارد برقی ولی خدا رو صرف نیم ساعت بیمارستان نقتر گفتن جراحی میخواد. خیلی ممنون، این... <تصفيق> متشکرم. خیلی ممنون، خیلی سپاس گزار. ما تا خب کجاست دارم؟ بفرمایید من میگم. بله بفرمایید بفرمایید. استاد من چند تا تماس دارم یکی خانم باردار بودن از همکارانم هم بودن که اینقدر حالشون بعد بود. اصلاً نمی‌خواستن بیان سر کار. بعد اتصال که بهشون دادن یه روز اومده بودن فقط کارو تحویل بدن و برن. دیگه کلاً حالشون بهبود پیدا کرد. بعد باید. یه مورد دیگه کیست استخوانه که درموش کار میکنم که به شدت درد دارن که حتی نمی‌تونن با موس کامپیوتر کار کردن که به محض اتصال دردشون خوب میشه. بعد یه مورد دیگه سرطان پروستاته که روش کار کردم متاستاز داده بود اصلا حتی عملش هم نکرده بودن. یعنی دیگه منتظر مرگ بوده احتمالا بعد الان که باشون تماس گرفتن گفتن که بهتر آرومتر شده بعد یه موردی که بیماری واسکولیته که زخمای پوستی که با درد و خونریزی همراهه بر سر اتصال درد و خونریزی قطع شده و دردای زانو بوده که بعد از اتصال خوب شده دیگه موارد اینجوریه بله بسیار بسیار بسیار عالی ناز تو که خب برای در مورد سرطان و متاستاز و ایران گزارش های خوبی امروز داشتیم توجه بکنید دیگه دوستان شک و تردید نکنند در این کهسا و در این موارد خب اون گزارش کجا تشوید داره نو خیلی خوب بفرماید بفرماید این هم خیلیتون من خودم کلیتو اولسروز حدود 20 سالی دارم و داشتین یعنی؟ داخل... یعنی یعنی داشتم بله بله حالا خی... تقریباً حدود یک هفته است یعنی نه تقریباً 4 5 ماهه که خونیزی شدید داشتم که اصلا فکر می‌کردم دیگه شاید کلاسام نتونم بیام اما الان حدود یک هفته است که خونیزی ام قطع شده بله بسیار عالی بسیار عالی بسیار عالی بسیار عالی خیلی خب خدا رو شکر می‌کنیم واقعا بیام یه چند تام گزارش از این آقایون عزیز بگیرم ببینیم که این میکروفون رو من بدیدم که اینجوری نمیشه بخش... خوب نیست ما در مقابل خانم کم بیاریم ما. <تصفيق> <مازم> سوال, سوال سوال یه چند اول گذر برمون کنیم بعداً سوال البته <مازم> من گزارشم اینجاست نه یه یه مورد زیادی بود ولی یه مورد که جالب بود به صورت تلفنی ارتباط برقرار کردم اون سمت این دوستمون اول سردت گیر بعد بدنش عرق کرد بعد پشت پاش یه مقدار درد کرد بعد گفتش که سی درصد چهل درصد بهتر شد بله این بودی که سوالم میمونه برات خیلی یکی دو تا از این آقایون گزارشای داشته باشیم ازشون چرا و منم روی یه موردهای زیادی کار کردم که اکثرشون درد زانو بوده درد پا بوده حتی یکی از دوستام یه ترکشی تو پاش بود که سالها اذیتش می‌کرد بعد ترکش البته مربوط به دوران جنگ نیست. در حین شکار انگار اتفاق افتاده بود. بعد من اصلا اون آدمیه که هیچ چیز رو هم باور نمیکنه. بعد دست هم گذاشتم روی زانوش و برطرف شد. اما غیر از همه اینا میخواستم خودم هم یه محضب و خدمتون بگم. من آدمی بسیار عصبی، خوشحال و خیلی هم مستربی بودم وسواس بس بسیار شدیدی هم دارم خانم هم اینجاست میدونه من دمپایا رو اگر جفت نمیکنم شب خوابم نمیبره یه همچین حالاتی ده ولی جالبینه که بعد اگر یه کسی ناراحتم میکرد حتماً دعوا میکردم می اومدم پایین دعوا کنم برخورد فیزیکی حتی بیشتر مواقع جالبینه که الان ظرف دو ثانیه اصلا بیشتر مواقع ناراحت نمیشم ظرف دو ثانیه پشیمون میشم بگم ای بابا چرا اینجوری برگردم و کنم تازه جا استره فهمه <تصفح> کنم بسیار <تصفح> <داره داره. تصفح> در حال من ایمان عجیبی رو امیدوارم که بتونم تا انتها این رو ادامه بدم خدا, خدا, خدا رو شکر برای خدا رو شکر برای خیلی خدا رو شکر خیلی خیلی ممنون محبت بکنید بدید این برای بله بدید پشت در حالا تشکر میکنم از شما <تصفح> <تصفح> قبلا تشکر میکن شما خیلی مشکه من یه نامه ای داشتم برای شما من خودم سی سال عرفان کار کرده بودم بودمشادم بیشتر بعد خیلی یه خود بلندتر می فروز نمیشتم یه نامه ای داشته بودم خدمتتون قبلا بله بله, بله بله خودم بیشتر از سی سال عرفان کار کرده بودم ذاتا هیچ وقت تو مای های چیزایی منفی نبودم بدم می اود بله, بله. رو شدیدیده داشتم و برای همین بیشتر مورد حمله قرار میگرفتم اینا رو من قبل ازن که اینجا بیان، من شاید سالها پیش حس گرده بودم و اینجا هم که خب و طریق همکارم سرکاخان رو علیزاده شاید بشنست، مستر تون بله بله همکارم هستش آشنا شدم، خب علاقه داشتم، همیشه اومدم مواردهای زیادی داشتم که حالا اینجا نمیخوام وقت کلاس بگیرم ولی تو دو جلسه قبلم چند بار خواستم که در رابطه با همین چیزهایی که شما داشتید یه بیشتر مباحث علمی داشته باشم که متاسفانه فرصت نشود بله بله صحبت‌های دیگری بود صرفاً آگاهی هم به من هم به دیگر همکار دوستان اینجا می‌رسید ولی دو هفته من یه ما موارد زیادی داشتم های زیادی بودن خیلی که اون موقع می‌گفتن که خب شما حداقل ما یه بار بخونیم ما بیا برو اصلا کار نکنم فقط در بزن برو گفتم اشکال نره متقدیت میام سعی میکردم چون من خودم سی سال خیلیه هم کار میکرد با کاری با خیلیه ها داشتم بعد دو هفته پیش هم که اینجا هفته پیش تعدیل بود یه هفته قبلش من که اینجا بودم ساعت دو من خب تو نامه اشاره کرده بودم مادرم زرف دو ماه، سه ماه میشه پاهاش اکار افتاده بله بله. بعد ایشون حالش به هم خورده بود و بعد متاسفانه خب من کلاس بودم یه مدتی اینجا اسمیکردیم یه اتفاقی افتاده شب رفتم یه خواهر دارم خارج از کشور پزشکی ایشون به خاطر اینکه حالش بخیر بود ماندی بود ایران خودشون رسوندن به ایران ما رفتیم در دیدیم خب کار به جای باری کشید آی سی یو و اینا خب ما ساکاریم جهت به حالت ما ارتباطات رو دادیم به ارتباطات رو دادیم از همکارم خواستم که خواهش کردم که تششیده باییم ایشون بدن بلی. چون من دلان چیزشون ندارم ایشون هم دادن ولی خب چون خودم بیشتر حمله ها را حس میکردم از قدیمال نمی دیدم. رویت نمیدیدم ولی بیشتر حمله ها را میدونم که اون چیزایی که میروه های غیر ارگانیک تو این کلاس نامیده میشه بی نهایت موجودهای مختلفی داریم فقط در یک چیز در قرآن اشاره شده جن اشاره شده ولی ما عرباه سعگهتان داریم خودتون دیگه استادید بهترم خیلی چیز هم خلی چیز هم هر چیزی که منفی خب خلاصه شده بلی. همیشه سعی می کردم نه اینکه مبارزه که یه طوری صد معبر رو ایجاد بکنم برای این نیرواز شیوه خاصی هم نداشتم فقط با همون چیزی که الان شما فاهم تششوات تششوات درم خودم. بله، افکار خودم ما ارتباط های زیادی داریم و جنجالی به خواهد شده بود که تو آی سیو ایشون فلان فلان فلان فلان، آن فلان مختلف کار به جای باریکی است تا اینکه دیگه من دیگه در مستم همیشه، در نهایت خون ساعتی دخالت کردم گفتم اگر قرار مریض من بمیره، بپای من من امزا میکنم، میبرم من معتقدم که ایشون هیچیش نیست بعد خوشبختانه بعد از اینکه بالاخره آزاد کردم. اینشون هم در حد واقعا من فکر بکنم خیلی سخت بود. پاپوش های دوختن اونجا گلا برداریای سر حزینه های آمویلانسی هم. خیلی. تو روشن کار رو به نداریم. ولی ما شدم بیارم اشون خونه. آوردم و حرکت های خود اینشون هم مرتق... اعتقاد زیادی. خب از زبا نماسخون اینا بدن. ولی اعتقاد زیادی هم به من از قدیم مثل بچه به من اعتقاد داشتن. تو بچهاش. بعد وقتی دستامو رو بدن نشون دادن حرکت این نورای غیر عادی خاصی حس می‌کردم چون من خواهش کرده بودم که این کار انجام بشه یعنی هم‌زمان این, این به تصفی اعلان کرده بودم خب خود منم که خب یه لایه حفاظ از جامشون یه مقاهم از قبل لایه حفاظ داشتم حالا ذاتی بود نمی‌دونم ولی خب خوشبختانه اون چیزایی که دستش گعبود همه چی سیاه شده بود چون من اگر الان هفته دو ساعت قشایی میتونه بشینه و میتونه خودش بیاد روی ویلچرش و مریضای دیگه هم بوده کار کرده امروز نتیجای مثبتی داشتن و خودشکر خوداروچو خوداروچو خود خیلی ممنون خیلی مچکر خوب, خوب خوب خیلی ممنون خیلی مچکر کلن چند تا دو از دوستان متوجه شدن که این هوشمندیه هست بله خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی ممنون متشکرم خب پس دیگه تموم شد ما یک مطلب رو یک مطلب رو نتیجه میگیریم هر چیزی امکان دارد موافق هستیم بسیار خب پس ذهنمون رو از نو باید ریسیت کنیم از نو باید به دنیا نگاه بکنیم هر چیزی امکان دارد خیلی چیزها ممکنه باشه که ما خبر نداریم اگر بگیم نیستن خودمون رو محروم کردیم از اونها خب حالا بریم به طرح چند تا سوال که دوستان اگه سوالی دارن حالا الان این سوالا هم پاسخ بدیم بریم ادامه بحث‌های امروزمون راجع به های نرم‌افزاری و نمی‌دونم ناخوشاگاهی و اینا صحبت بکنیم با خب صاحب میکروفون کجاست میکروفونمون این وجود درستمونه بعد از یک روزنگ که چیز کردیم دیگه وارد درستامون میشیم میکروفون جانم جانم جانم میکروفونو میکروفونم به بخشی من سوال بود که آیا اگر چند نفر بروی یک نفر اتصال بدن هر نظر اون قدرت با یک نفر برابره یا که از تعداد بیشتر میشه کیفیت هم بالاتر میره بسیار خوب خیلی ممنون آی دکتر این توی مباحث درسیمون اگر مراجعه بکنیم اینجا گفتیم که آگاهی یا شعور ماده انرژی درسته گفتیم شعور نه ماده است نه انرژی وقتی میگیم قدرت، کیفیت، بحث کمیت و اینجور جنسیت، کمیگت، قدرت اینها معرود میشه به چی؟ این بخش ها مربوط میشه چون ماده هم انرژی در واقع ماده هم موج متراکمه انرژی متراکمه بنابر این اگر بگیم قدرت بیشتر میشه قدرت آیا بیشتر میشه اون وقت از اینجا میایم به این سمت‌ها اگر یکی بگه من قویترم ترم خب مثلا فرصم یکی بگه من قویترم ترم بعد میگن که خود تو قوی تری این قدرت کمیت رو بمیاره کمیته خلاصی سر از اینجا در میاریم بعد باید این خوالا که این مثلا تو قوی تری طبق چه کمیتی طبق چه مقیاسی چه ته، ته چه ارزیابی بنابراین کار با شعور برای خودش مقررات و مسائل خاص خودش رو داره علمی هم هست هستم یعنی در واقع وقتی بریم داخلش به یک بحث های برمیخوریم که برای ما اونارو رو تعییم میکنه لذا کسی تو این وادی نمیتونه بگه من قوی ترم نمیتونه مثلا فرس کن بگیم ده نفر بشیم حالا قوی تر میشیم صد نفر بشیم چه یه نفر چه صد نفر توجه میکنید فرقی یه نفر،, نفر کار بکنه. تفاوتی نمی کنه سوال بعدی بینه که من هر وقت اتصال می خوابم می گیرم حالا مشکل چی هست بله یک موضوعی که در اسکنها مورد بارز اسکنها که شما مشاهده کردین توجه می شما مشاهده کردین روی خواب و خستگی دو کیسی که ما به سلا حالا باش برخورد میکنیم زیاد و به طور عمده باش سر و کار داریم بحث خواب و خستگیه عمدتان ارتباط میدیم تاثیرات یعنی اون خواب الگوی خواب اشکالدار یعنی که بگیم اینه که الگوی خواب کامل نبوده صحیح نبوده درست نبوده ظاهر میشه وقتی رو دیگری هم کار میکنین رو خودمون هم اسکن میشه ممکنه به اون ارتباط بدیم با خودمون خودمون بریم اینا ات... این یکی دو سه هفته اول اینجوری هست ولی شما اشکال برطرف میشه بعد از اون نیست اصلا ارتباط میده دیگه دیگه اسکنین رو خودمون نمیشه چون اسکنمون تمام میشه دیگه بالاخره یکی هم خستگیه یعنی خستگی چند نفر خستگی اومده رو کسی که تجربه کردن خستگی اومد رو نمیدونم چی شد مم. به طور معمول مم. کسی که در ارتباطه هست باید کمتر خسته بشه خب به طور معمول اما بعد از گذراندن این دوره مقدماتی و بیرون اومدن این خستگی ها و اینا اصولاً کسی که در ارتباط با این مرچیز است باید کمتر خسته بشه اگه یادتون باشه راجب طول راجع راجب ذریب افت سلول اینا با هم یه داشتیم دیگه لذا یک این یکی از نموداشه و فرد از یه انرژی بالاتر از سطح معمول برخوردار هست و برخوردار میشه خوب، این, این دو این دوتا مورد ما داریم که وقتی کار میکنیم این میتونیم در جزء موارد بارز اسکنه بعد ما کاری که اینجا در این دوره شروع کردیم از این دوره شروع شده تغییره الگوی خواب چند نفر الگوی خوابشون تغییر کرده؟ خب، خواب، شفاف، شفافتر، واضح رنگی <تصفيق> خب. این تغییر الگوی خواب که داریم و تیگه مقاطب مختلف کار میشه تا آمادگی ما برای این که اگه خواستن توی خواب به ما آگاهی بدن در خواب آگاهی های خواست بیاد این زمینش فراهم باشه توجه میکنید جزء چیزای جانبی بوده که دنبال کردیم دنبال میشه چیزای جانبی دیگه هم بوده مثل چند نفر حس حضور حس حضور رو یه جرای بهش نزدیک شدن دستشونو بلند کنن دوستان حس حضور یعنی یعنی حس حضور چند نفر آرامش رو آرامش رو دارن تجربه میکنن و چیز میشه خب ببین اینا دیگه هم دستیدهای جانبی است که در واقع روز صحبت خاصی نداشتیم ولی بعدا در دورای بعد مفهوم حس حضور و اینا رو بهتر میتونیم متوجه بشیم خب هم از این مساله بفرمایید بفرماید استاد ببخشید جلسات قبل راجع به پولاریتی صحبت کردیم راجع به پولاریتی بله بله با فلز سر کار داشته باشه از فلز دوری بکنه یه همچی صحبتی کردید وقتی شما سوار ماشینتون میشین این بله. جریانات اصلا فرق میکنه من میخواستم راجه سوال بکنم مثلا یکی که فرزن یه پین میذارن تو بدنش اون فلز یه ایمپلنت میذارن یا یه پرکردگی دندون داره اینا رو پولاریتی بدن اثر میذاری یا نمیذاره بله اثر میذاره مثلا شما انگوشتر ساعت اون چید فلزی آبی میشه همه اینها اثر میذاره تغییراتی زیاد میکنه و از کردم خدمتون شاید یک روزی انسان به این الجه برسه که هرچی فلز اخودش دور بکنه این مطلب و این مسئله هست یا مثلا من شنیدم بعضی ها چون فلز سردردای شدید داشتن گفتن اینا رو خارج بکنین سردردتون و خارج کردن سردرداشون هم خوب شده میخوام ببینم تاثیری داشته یا مسلمان من دارم از میکنم خدمتون که ما به یکی دو نوع آلودگی اشاره کردیم درسته؟ آلودگی پولاریتی، آلودگی انباد اشاره کردیم و این دوتا به نوعی با فلس هم ارتباط داره بنابراین این قضیه ممکنه در پنج سال آینده یا در دهه آینده مخصوصا آلودگی انواج، آلودگی انباد الان روز به روز میبینید که گستردگی مسائل امواج مخابراتی نمیدونم چی اینها در دنیا داره بسیار و به سرعت میره بالا و تاثیر میذاره حتی رو جو تاثیر میذاره این انواج ایجاد حرارت میکنه توی جو. درست یا نه؟ ایجاد حرارت میکنه و بعد اینا در زوب شدن یخهای قطبی تاثیر می‌ذاره و تو طوفان نوح که در پیش داریم یا طوفان نوح در پیش داریم دیگه خب ناشی از پدیده گلخانه‌ای و اینا که اشاره کردیم خب اینا رو تسریع می‌کنه و این طوفان نوح رو جلوتر میندازه که بیاد بعد یه سال دیگه هم داشتم استاد من آشت رو بعضیه که کار میکنم بعضی موقع برای خودم یه حس بدی میده اون می‌خوام اینم امواج اونو رو می‌گیرم چه از کنم که در این مورد ما یکی از اسکنایی که میشیم چند نفر اسکن شدن احساس کردن یه منفی یا چیزی همین اسکن خودشون کسی هم پیشون نبوده دستشونو بلند کنن خب ما یه سری خروچهای منفی داریم تششوات منفی به سلا شعور معیوب سلولی تششوات شعور معیوب نمیدونم اینا رو داریم و از درون خودمونه از خودمونه یعنی اگر کسی هم پیشتون نبود، اسکن می کردید، ممکن بود این تحضیبه رو بکنید. نداشتین این تجربه رو که در تنهایی هم این مسئله اتفاق بیفته؟ نه، فقط بعضی, بعضی اشخاص خاص که کار میکنم اینجوری میشه. یک مسئله دیگه هم هست که، یه مسئله دیگه هم من خدمتون بگم این قضیه. اینه که شما در این حفاظ قرار دارید ممکنه که با کسی کار میکنید تششوهات منفی، به سمت شما میاد شما حس میکنید بهتون برخورد کرد ولی درون نمیره بعضی مقاید شما برخورد تششعات منفی رو حالا مخصوصا ممکنه در آینده مقدار حساسیت و اینا بیشتر بشه برخورد احساس میکنید ولی چیزی به درون نمیتونه بره اگر بتونه بره اصلا ما یه روز هم نمیتونیم دوان بیاریم دقت میکنید این, این مسئله شد وقت یه دیگه مثلا یه جمع نشست بارها شده مثلا همهشون مشکل داشتن. رو همه اینا میشه آدم تک تک کار بکنه در همون زمان مثلا یک بار ازیاد آدم به خودش مشکلی براش پیش نمیاد. ببینید الان ما در, در همون زمان روی همه چیکار کردیم؟ کار کردیم. هفته قبلم دیدین که از دوستان خواهش کردیم ها. اومدن و رو همه کار کردن. درسته یا نه؟ ها. بنابراین هیچ اشگاهی نداره در تحت پوشش این هوشمندی حفاظت لازمه مال همه بغل دست هم نشستم ولی چیزی به کسی سرایت نمیکنه اگر اینجو نبود باجعه بود بله ما جانم بفهم ببینید زمان ارتباط سوال کردن سکا خانم سوال کردن که زمان ارتباط آیا مهم نیست زمان ارتباط ببینید این ارتباط رو زمانی که فرد متوجه میشه خاتمه که پیدا کرد متوجه میشه که خاتمه پیدا کرده بله بعد بعضی ها انقدر منشالله سبورن که به پنج ثانی هم نمیذارن برسه انقدر راحت طلبن که میخوان در از سه ثانیه جواب بگیرن اینا باید اینا که متوجه اگه نشن در پونزه دقیقه حداقل ادامه بدن اگر هم متوجه میشن که وقتی اسکنشون تمام شد خودشون متوجه شدن و میان بیرون ارتباط ویژه چیزی به نام ویژه ما نداریم در اصل من توضیح دادم بله بله ارتباط ویژه ما یک ارتباطی داریم که در آینده ها همگانی است البته همه ارتباطا همگانیم ولی این ارتباط یه چیزیست که در هر لحظه‌ای هر کسی بدون اینکه اسمش لازم باشه یا مشخصه لازم باشه میتونه رهاسن در اون قرار بگیره و مشکلش قدر بررسی قرار بگیره خوب دقیق بکنید تعریف ها رو یعنی تو خیابون، تو کوچه، تو اتوبوس تو اینجا تو اون، تو, تو هر جایی نیازی, نیازی نیست فلپور مثل چیه؟ تلفنه مثلا 118 است که تو الان یک چیزه میگاه بدونیم، درنگ میدنیم، فلپوره یا یعنی نمیدونم آتش نشانیه که دو شماره رو میگیری، اون هست. یک چیز اورژانسی رو مثلا ارائه میکنه که در اون لازم نیست شما اسمی داشت اسمی معلوم باشه چیزی بگیرید هر کسی حالا شما هر کسی رو خوازیم دعوت کنیم تو ارتباط ویژه ببینیم اونا میان بدونه که اسمی چیزی ساعتی هر زمانی بینیم فاصله میانیم ارتباطشون برقراره در آینده نزدیک ما با این ارتباطات خیلی کار داریم خب با این ارتباطات خیلی کار داریم از طریق این ارتباطات مسائلی رو به شما انتقال میدیم کارهایی رو برای شما اعلام میکنیم مسائل رو در روی جمعی دوستمون که سآل کردم برای همه با برای همه میتونیم کار کنیم همین جوری خوب اونجا توی اون روی جمعی تو ارتباطات جمعی کارهای جمعی رو داریم توجه فرمودین. خب حالا فیلا تجربه بکنید ببینید هست یا نیست بعد راجع به کار با هم صحبت میکنید به من سوالم این بودش که من رو خیلی کار کردم که ارتباط رو تصا یه خود بلند جلو رو دا آنتون لط بکنش. رو خیلی کار کردم اتصال رو حس کردم ولی من خودم هنوز تجربه اسکن رو حس نکردم هنوز کمماکان این اینکه خیلی افراد میگیر. هم پس اونا متوجه شدن. اونا متوجه شدن نتیجه هم گرفتن. گرفتن در کار رو دو کارو ادامه میدید تا اینشاالله مسائل خودتون، یه خورده که افسردگی هست درسته؟ نه بیشتر تشتت فکر که تا هم هست یا نه به تأکید بگید. خب تشتت ذهنی رو که میفرما قفل ذهنی نه, زینی... نه نه بیشتر بس... هر چیزی باشه همون بحث تشتت هست. من ارزمین بودش که روی دوستان دیگه که اینجا کلاس اومدن بهشون بگم رو من کار کنم مثلا چه بدن این تاثیر داره؟ 100 خودم ارتباط صد درصد من این توصیه بوده که به همه دوستان کردم کار با دیگری کار با دیگری اصول این قضیه است که مسائل خود ما فرصت بدیم حل بشه ببینید شما اگه قرار بود صبر میکردین تا تشتوت زینیتون حل بشه و بعد استفاده بکنیم. الان این تجربه رو ای دست داده بودیم. درست یا نه؟ اما الان تجربه رو به دست و در عین حال وقت وقتو گذاشتین تا بله این مشکل خودتونم حل بشه دو سه جلسه اول تا خودم حس نکرده بودم کار نکردم که شما فرمودین برو کار بکن که سایر دیگه حس میکنن که خب درداشونم هم پیدا کرد چند مورد هر کسی هم که کار کردن بلا استثنا حس کرده منتهی می‌خواستم ببینم همون کافی است یا که بله. خوب حالا که می‌فرمایید کسای دیگه خب حالا یه آمارم بگیریم چند درصد ما اگر ارتباط بدیم چند درصد گزارش مثبت به ما میتن خب چه پیشنهاد میکنن دوستان ببینید. مثلاً میشه. نه ببینید من دارم اونایی که میگم که نتیجه مثبت یعنی که نتیجه مثبت نه مسئله است مثلا همین گزارشاتی که گفتن که خوب شده گفتن دیدید که این همه گزارش اونایی که در واقع هیچ بهبودی پیدا نمی کنن. از اون نموداره بالا پایینن چه جوری هستند آخه اونام باید در نظر بگیریم خب چند درصد دوستان پیشنهاد می هشتاد هفتاد شست هفتاد درصد و <تصفيق> خب <صفح> خب ما برحال توجه بفرمایید که توجه بفرمایید طبق تجارب طولانی ما با هفتاد درصد یعنی روز صد نفر کار کنیم هفتاد نفر هفتاد درصد به ما گزارش مطلوبی میدن گزارش تغییرات رو میدن خب دوستان عزیز یک روب زنگ تفریه اعلام کنیم خواهش می کنم. بیشتر نشه چون می خواهیم خورده بیشتر با هم صحبت کنیم یک روب زنگ تفکیم